الرحمن الرحیم. بخشنده مهربان است مالک یوم الدین مالک روز است. ایا که نعبد و ایا نستعین تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم الصراط ما را به راه راست هدایت کن صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین راه کسانی که بر آنان نعمت دادی نخشم گرفتگان بر آنها و نگم را اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام لام مین ذالک الكتاب لا ریب فیه هدا للمتقین این کتابی است که هیچ شکی داران نیست و مایه هدایت پرهیزگاران است الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون آن کسانی که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا پا میدارند و از آن چه روزیشان داده این انفاق میکنند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 اولائك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون آنان بر هدایت از جانب پروردگارشانند و آنان رستگارانند ان الذين كفروا سوء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون كثاني كافر شدند برایشان یکسان است که آن را بترسانی یا نترسانی ایمان نمی آورد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ گروهی از مردمان هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آبرده ایم در حالی که ایمان ندارند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 و اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ طَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مفلحون. و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند ما فقط اصلاح کننده ای إنهم هم المفسدون ولكن لا یشعون آگاه باشید آنها همان مفسدانند ولی نمیفهمند و اذا قیل لهم كما كما آمن کما آمن الناس قالوا آنؤمن کما آمن السفهاء.الا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. به هنگامی که به آنان گفته شود ایمان بیاورید چنانکه که مردم ایمان آورده اند میگویند آیا ایمان بیاوریم چونان که بیخردان ایمان آورده اند آگاه باشید آنها همان نابخردانند ولی نمی دانند. وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات میکنند میگویند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 اولئک <سؤال> الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین آنان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریدند پس تجارت آنها سودی نداد و هدایت نیافتند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 مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذانهم مِنَ الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. <تصفيق> و در آن تاریکی ها و برق باشد و آنها از ترس مرگ انگشتان خود را در گوش فرو می برند تا صدای سائقه را نشنوند و خداوند به کافران احاطه دارد یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشاو فيه واذا اظلم عليهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم الله على كل شيء است برق را هرگاه که برای آنها روشن شود در روشنایی آن راه می و چون تاریک شود در جای خود به ایستند و اگر خدا بخواهد گوش و چشمانشان را از بین می چرا که خداوند بر هر چیز تواناست یا ایوهن ناس اعبدو ربكم الَّذِي خلقكم وَالَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتقون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 و انزل من السماء ماء فأخرج بهی من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون آن کس که زمین را برای شما بگسترد و آسمان را همچون سخفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن انواع میوه ها را به وجود آورد تا روزی شما باشد بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهی در حالی که میدانی و این کنتم فی ریب نزلنا علی عبدنا فأتو بسوره فأتو من و, الله این و اگر در باری آن چه بر بنده خود نازل کرده ایم در شک و تردید هستی سورهای همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا فرا خانید اگر راست میگویید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين پس اگر چنین نکردید و هرگز نتوانید کرد از آتشی بترسید که هی آن مردم و سنگهاست و برای کافران آماده شده است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 و فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند مجده که باقهای از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختان است هر زمان که میبه ای از آن به آنان داده شود گویند این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود و های همانند آورده شود و برای آنان همسرانی پاکیزه است و جاودانه در آن خواهند بود اینن الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعضه فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا و ما الا پر خداوند از اینکه به پشعی یا بالاتر از آن مثال بزند شرم نمی کند آنان که ایمان آورده اند میدانند که آن مثل حق است از طرف پروردگارشان و اما آنهایی که کافرند میگویند خداوند از این مثل چه خواسته است خداوند بسیاری را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند و تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْفَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئیک هم الخاسرون کسانی که پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن میشکنند و آنچرا که خدا دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در روی زمین فساد میکنند اینها زیانکارانند کیف تکفرون بالله و کن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 ما تسبیح و حمد تو را به جایی آوریم و تو را تقدیس می‌کنیم پروردگار فرمود یقینا من می‌دانم آنچرا که شما نمی‌دانی و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ان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 قالوا <تصال> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم فرشتگان گفتند منزهی تو ما چیزی جز آنچه به ما آموختی نمیدانیم تو دانای حکیمی قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ, قال ألم أقل لكم إِنِّي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 آنچه را که آشکار میکنید و آنچه را پنهان میداشیدید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلیس أبا واستكبر وكان من الكافرین یاد <Crowkommen> بیاور، هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید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 و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهش سکونت کن و از میوه آن هر جا می‌خواهید، گوارا بخوری ولی کن به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد فَأَزَلَّهُمَ الشیطان عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما مَا كَانَا وقل وَقُلْ نَهْبِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو ولكم فی الارض مستقر و متاع الى حين. پس شیطان موجب لغزش آن دو شد سپس آنان را از آنچه در آن بودند بیرون کرد و گفتیم همگی به زمین فرود فرودایی در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهرهبرداری برداری خواهد بود فَتَلَقَّى آدم مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و خداوند توبه او را پذیرفت چرا که خداوند توبه پذیر مهربان است قل نهبطوا منها جمیعا فإما يأتینكم منی هدى فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون گفتیم همگی از آن فرودایی پس هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد کسانی که از آن پیروی کنند، نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه نقمگین خواهند شد. والذین كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون و کسانی که کافر شدند و نشانه های ما را دروغ پنداشتند آنان اهل دوزخند و همیشه داران خواهند بود یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتیلتی انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوف بعهدیکم و ایا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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون و حق را به باطل نیامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که میدانید و اقیموا وآت الزکات واركعوا مع و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ و, الا و, و نماز یاری جوید و نماز جز بر فروتران دشوار و گران است الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ لهم اليه راجعون عن کسانی که دیدار کننده پروردگار خیشند و به سوی او باز می‌گردند یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انمت عليكم و انني فضلتكم على العالمين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 و از وعدنا موسى اربعین لیلتا ثم اتخذتم العجن من بعده و انتم ظالمون و بیاد آورید هنگامی را که با موسى چهل شب بعد گذاردیم آنگاه شما بعد از او گو ساله را به پرستش گرفتید در حالی که کار بودید ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون سپس شما را بعد از آن بخشیدین شاید سپاس گذاری کنین و ایز آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون انیز به یاد آورید هنگامی را که به موسی کتاب و فرقان را اتای کردیم تا اینکه هدایت شوید وإذ اذ قال موسی ل قومه یا قوم این ظلمتم آفسکم ب العجل فتوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم ذلك خير لكم, لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم طب یاد آورید زمانی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من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 وإذ قلتم يا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون و بهیاد آورید هنگامی را كه گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم مگر اینكه خدا را آشكارا ببینیم پس سائق شما را فرا گرفت در حالی که مینی ثم من بعد موتكم لعلكم سپس شما را پس از مردنتان برانگیختیم شاید سپاسگزاری کنیم. و ظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن و السلو من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و شما سایبان قرار دادیم. و من و سلوها را بر شما فروفرستادیم فرستادیم و گفتیم از پاکیزه هایی که به شما روزی داده این بخورید آنها به ما ستم نکردن بلکه به خود ستم می بودند و اذ قلنا دخول هذه القرية فكلو منها حيث شئتم رغدا و دخول الباب سجدا و دخول الباب سجدا و قولو حطتن نغفر لكم خطاياكم و سنزید و آورید هنگامی را که گفتیم به این شهر وارد شوید و از نعمتهای آن از هر جا که میخواهید به فراوانی بخورید و با خشو و فروتنی به دروازه درایید و بگویید خواسته ما آمرزش گناهان است تا گناهان شما را ببخشید و به نیکوکاران فزونتر میبخشیم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون آنگاه ستمگران این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند بر ستمگران در برابر این نافرمانیشان از آبی از آسمان نازل کردیم و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين و بیادا هنگامی را که موسی برای قوم خیش آب خواست، پس گفتیم، اسای خود را بر سنگ بزن، آنگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید و هر گروهی آبش خور خود را دانست و گفتیم، از روزی خدا بخورید و بیاشامید و در زمین به تباهی مکوشید.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 ذلک بأنهم كانوا یكفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغير الحق ذلک بما عصوا وكانوا یعتدون و, و به آورید زمانی را که گفتید ای موسی ما هرگز بر یک نوع غذا شكی بایی نداریم پس پروردگار خویش را بخوان تا از آنچه زمین میرویاند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 اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند. ان <تصفيق> الذين امنوا والذین هادوا والنصارى واصاب من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فَلَهُمْ اجرهم عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ به درستی کسانی که ایمان آورده اند، و کسانی که یهودی شدند و نسارا و سابعان آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند، و کارهای شایسته انجام دهند پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه خواهند شد و اذ اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة و اذکرو و اذکرو ما فيه لعلكم تتقون و به آورید زمانی را از شما پیمان گرفتیم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 بیگمان شما از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و تجاوز کرده آگاه شده ای. پس ما به آنها گفتیم بوزینهای خار و رانده شده باشید. فجعلناها نکالا لی ما بین يديها وما ما خلفها و للمتقین پس ما این کیفر را عبرتی برای مردم آن زمان و نسل بعد از آن و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم و اذ قال موسی لقومه إن الله یأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين آورید زمانی را که موسی به قم خود گفت خداوند به شما دستور میدهد که گاوی را ذبح کنی گفتند آیا ما را مسخره می‌کنی موسی گفت به خدا پناه میبرم از اینکه از نادانان باشم قال ودع لنا ربك لنا ما قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون گفتند از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند که آن چگونه گاوی است موسی گفت خداوند میفرماید آن گاوی است که نه پیر و نه جوان بلکه میان سالی بین این دو باشد پس آن چه به شما دستور داده شده است انجام دهید قال دع لنا ربك یبین لنا ما لونها قال انهو یقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر ناظرین گفتند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 قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ اِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا اِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد که آن چگونه گاویست براستی این گاو بر ما مشتبه شده ف خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد؟ قال إنّه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسى گفت خدا میفرماید آن گاوی است که نه برای زدن رام شده و نه برای زراعت آب کشی کنند بی عیب است و یک رنگو در آن خالی نیست گفتند اینک سخن درست آوردی پس گاو را سر بریدند و نزدیک بود که این کار نکنند و از قتلتم نفسا فد دارعتم فیها و الله مخرج ما کنتم تکتمون لبیاد آورید هنگامی را که فردی را کشتید آنگاه در باره او به نزا پرداختید و خداوند آشکار کننده آن چیزی است که پنهان می کردید فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پس گفتیم پارعی از گاو را به مقتول بزنی خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و نشانه های خود را به شما مینمایاند شاید اندیشه کنید ثُم مقصد قلوب بعد ذالک فهیاک الحجارة او اشد قسوت و من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْتَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ سپس بعد از این دلهای شما سخت شد همچون سنگ یا سخت زیرا که پاره ای از سنگها میشكافد و از آنها نهرها جاری میشود و پاره ای از ترس خدا فرو میافتد و خداوند از آنچه میکنید غافل نیست افتطمعون أن یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم یسمعون كلام الله ثم یحرفونه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 اولا يعلمون ان الله يعلم ما یسرون و ما یعلنون آیا نمی دانند که آنچرا پنهان میدارند و آنچرا آشکار می کنند خداوند می داند. ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب إلا أمانی وان هم إلا یظنون و برخی از آنان بیسوادانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمیدانند و تنها به پندارهایشان دل بستهاند فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ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 و ایذ اخذنا لا تسفیکون دماؤکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و تشهدون و به آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خونهای همدیگر را نریزید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 وما الله بغافل عما تعملون پس از آن این شما هستید که یک یکدیگر را میکشید و گروهی از خودتان را از سرزمینشان بیرون میکنید و علیه آنها به گناه ستم یکدیگر را کمک میکنید و اگر اسیران نزد شما آیند فدیه می دهید و آنان را آزاد میکنید و حال این که بیرون کردن آنان بر شما حرام بود آیا به بخشی از کتاب ایمان می آورید و به بخشی کافر می شوید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند چیست جز رسوایی و خاری در این جهان و در روز قیامت به شدید ترین عذاب برگردانیده می شوند و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست اولئیکن لذی اشتروا حیات الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم یونصرون اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای آخرت خریدند پس عذاب آنها تخفیف داده نمیشود و كسي انهارا را یاری نخواهد کرد ولقد اتينا موسى الكتاب و قفينا من بعده بالرسل و اتينا عيسى بن مريم البينات و بروح القدس ف به درستی که به موسا کتاب دادیم و بعد از او پیامبرای پشت سر هم فرستادیم و به ایسا پسر میم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 بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب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 قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان كنتم مؤمنین. و چون به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل کرده ایمان بیاورید میگویند ما به چیزی ایمان می آوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر میشوند در حالی که آن حق است و تصدیق کننده چیزی است که با خود دارند بگو اگر راست میگویید و مؤمنید پس چرا پیامبران خدا را پیش از این میکشید ولقد جاءکم موسی بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون و به راستی موسا موجزه ها و نشانه های روشنی برای شما آورد بانگاه شما پس از وی گوثاله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمگر بودید و ایذ اخذنا میثاقكم و فوقكم الطور خذو ما آتيناکم بقوت و اسمعو قالوا سمعنا وعصینا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما یأمركم به ایمانكم إن كنتم ممنین و بهیاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه تور را بالای سر شما برافراشتیم گفتیم آنچه را به شما داده این محکم بگیرید و بشنوید گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و دلهایشان بر اثر کفرشان با محبت گوساله آمیخته شد بگو ایمانتان چه فرمان بدی به شما میدهد اگر شما مؤمن هستید قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو اگر سرای آخرت در نزد خدا مخصوص شماست نه سایر مردم. پس آرزوی مرگ کنید اگر راست گویید. ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیمون بالظالمین بلی آنها به خاطر آنچه دستهایشان هایشان پیش فرستاده است هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد وخداوند به ستمگران داناست ولا تجدننهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركو يود احدهم لو عمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر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 قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله علا قلبك بإذن الله فإنه نزله علا قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه و هدى و للمؤمنين کسی که دشمن جبرئیل باشد در حقیقت دشمن خداست زیرا که او به فرمان خداوند قرآن را بر قلب تو نازل کرده است در حالی که تصدیق کننده آنچه پیش از آن است و برای مؤمنان راه و مژده است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 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ و هر آینه که ما نشانه های روشنی بر تو نازل کردیم و جز فاسقان کسی به کفر نمی برزد او وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آیا چون نیست هرگاه آنها پیمانی بستند گروهی از آنان آن را دور افکندند بلکه بیشترشان ایمان نمیآورند وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ و هنگامی که نبذ فریق از جانب خدا به سویشان آمد که تصدیق کننده آنچه با خود گروهی از آنان که به آنها کتاب داده شده بود کتاب خدا را پشت سرشان افکندند گویی آنان نمیدانند و تبع ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ و از آنچه شیاطین در عهد فرمان روای سلیمان بر مردم می خاندند پیروی کردند و در حالی که سلیمان هرگز دست به سهر نیالود و کافر نشد ولی کن شیاطین کفر برزیدند به مردم سهر آموختند و از آنچه چه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پیروی کردند و آن دو فرشته به هیچ کس چیزی یاد نمی دادند. مگر اینکه از پیش به او می گفتند ما وسیله آزمایشیم پس کافر نشو پس از آن دو فرشته چیزهایی می آموختند که به وسیله آن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 اگر ارمیدنستند ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون و اگر آنها ایمان میآوردند و پرهیزكاری میکردند همانا پاداشی از نسد خدا بهتر بود اگر میدانستند یا أیها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب ألیم ای کسانیکه ایمان آوردهاید در گفتگو با یانبر نگویید راعنا بلكه بگویید انظرنا و بشنوید و برای کافران عذاب دردناکی يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخير منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير هر آیئی را نسخ کنیم یا فراموش گردانیم بهتر از آن یا همانند آن را می آورین. آیا نمیدانی که خداوند بر هر چیز تواناست؟ علم تعلم أن الله له ملك السماءات والأرض وما لكم من دون الله مولى ولا نصير آیا نمیدانی که فرمان روای آسمان‌ها و زمین از آن خداست و جز خدا از سر پرست و یاوری برای شما نیست؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل آیا میخواهید از پیامبر خود درخواست کنید که پیش از این از بوسها خواسته شد و کسی که کفر را به ایمان برگزیند مسلمان راه راست را گم کرده است ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق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 بگو اگر راست گویی دلیل خود را بیاورید بلا من اسلم وجهه لله و وهو محسن فله اجره عند ربه فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آری کسی که مخلصانه روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد پس پاداش و نزد پروردگارش محفوظ است و نترسی بر آنهاست و نه اندوه گم وقالت اليهود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 یهودیان گفتند مسیحیان بر چیزی نیستند. و مسیحیان گفتند یهودیان بر چیزی نیستند در حالی که آنان کتاب را میخواند. همچنین کسانی که نمیدانند همانند آنان گفتند پس خداوند روز قیامت در آنچه که در آن اختلاف داشتند میان آنان داوری می کند. و من أظلم من من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم و کیست ستمکار تر از آن کس که های خدا را باز داشت که در آن نام خدا برده شود و در ویرانی آنها کوشی شایسته آنان نیست جز به حال ترس وارد این مساجد شوند بهره آنان در دنیا خاری و رسوایی و در آخرت عذاب بزرگی است و المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سورو کنید روی خدا آنجاست همانا خداوند گشایشگر داناست وقال اتخذ الله ولدا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 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون پدید آسمانها و زمین است و چون بکاری اراده فرماید تنها به آن میگوید باش پس می میشود.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 آنان که نمیدانند گفتند چرا خدا با ما سخن نمی‌گوید و یا چرا معجزه و نشانه ای برای ما نمی‌آید کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین گونه سخن می‌گفتند دل‌هایشان دلهایشان به یک دیگر همانند است همانا ما آیات و نشانه ها را برای گروهی که یقین دارند آشکار و روشن ساختیم اِنَّا اَرْسَلْنَا بالحق بشيرا وَنَذِيرًا ولا تُسْأَلُ عن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ همان آما تو را به حق مجدرسند و بی دهنده فرستادیم و در باره دوزخیان از تو پرسیده نخواهد شد ولن ترضى عنك اليهود ولال نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وهرگز يهود ونسارا أستو خشنود نخواهند شد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 الذين که الكتاب يتلونوه حق تلاوته يؤمنون به ومن يكفر به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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعه ولا هم نصرون و از روزی بترسید که کسی از کسی هیچ کفایتی نکند و هیچ گونه تابان و فدی از او پذیرفته نمیشود و شفاعت او را سود نمی دهد و یاری نمی شوند و اذ به تلای بكلمات فاتممهن. قال: انى جاعلك للناس اماما. قال: ومن ذريتى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 خداوند فرمود، پیمان نمیرسد. و عهد من به ستمکاران نمی رسد. و از جعلنا البیت مثابة للناس و واتخذوا و من مقام ابراهیم مصلى وعهدنا عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل انطه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 و ما به ابراهیم و اسماییل بحی کردیم که خانه مرا برای تواف کنندگان و مقیمان و و سجود کنندگان پاک و پاکیزه کنید و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا و ارزق من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر و به كفر ثم أضطره الى وبئس آورید هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری أمن بگردان و اهل آن را کسانی که از ایشان به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند، از میوه‌های های گوناگون روزیده، خداوند فرمود، و هر کس که کافر شود اندکی بحرمندش می سپس او را به عذاب آتش می‌کشانم و بد سر است. و ایذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا اینک أنت السمیع العليم و بیادا ورید هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایههای خانی کعبه را بالا می بردند و میگفتند پروردگارا از ما به پذیر هماناک توی شنوای دانا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فروادغارا <تصفيق> ما را فرمانبردار خودت قرار ده و از فرزندان من امتی فرمانبردار خود پدید آور و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر به درستی که تو توبه پذیر مهربانی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم روردارا در مان آنها مبر از خودشان برانگیز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 اسلم لرب آنگاه که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو گفت برای پروردگار جهانیان تسلیم شدم و وصى بها ابراهيم بنيه و يعقوب يا بنيه اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْسِلِمُونَ فِي ابراهيم ويعقوب فرزندان خدرا به این آیین سفارش کردند. ای فرزندان من خداوند این آین را برای شما برگزیده است پس نمیرید جز این که مسلمان باشید ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ایذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائیک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون آیا هنگامی که مرگی عقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ آنگاه که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را میپرستید؟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 آنها امتی بودند که در گذشتند برای آنها است آنچه که کسب کرده اند و برای شماست است آنچه کسب کرده اید. و از آنچه آنان می کردند شما پرسیدی نمی شوید و قال او نصارا تهتدو قل بل ملت ابراهیم حنیفا و كان من المشرکین و اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا راه یابی بگو بلکه از آیین ابراهیم که یک پرست بود و هرگز از مشکان نبود پیروی میکنید قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى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 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پس اگر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 و نحن له عابدون رنگ خدایی را بپذیرید و چه کسی در رنگ کردن از خداوند نیکوتر است و ما تنها او را میپرستید قل اتحاد جوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون بگو آیا در دربارۀ خداوند با ما مجادله میکنید در حالی که او پروردگار ما و شماست و کردار ما از آن ما و کردار شما از آن شماست و ما او را با اخلاص پرستش کنیم. أم تقولون إن ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و والاسباط كانوا والاسباط هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن من کتم عنده من الله و من الله بغافل عما تعملون یا <تصفيق> میگویید که همانا ابراهیم و اسمایل و اسحاق و یعقوب و اسباد یهودی یا نصرانی بودند بگو شما داناترید یا خدا؟ و چه کسی ستمکار است از آن کسی که گواهی و شهادتی را که از جانب خدا نزد اوست کتمان می کند و خدا از آن چی می کنید قافل نیست تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عما كَانُوا يَعْمَلُونَ به هر حال آنها امتی بودند که در گذشتند، برای ایشان است آنچه به دست آورده اند و برای شماست آنچه به دست آورده اید و از آنچه آنان می کرده اند شما پرسیده نمی شوید.